I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? قفس قفس این قفس این قفس پرنده در خوابش از یاد میبرد. منم ما در خواب میبینمش که خود به بیداری نقشی به کمالم از قفس از مادو، دو کدام تو که زندانت تو را زمزمه کند یا من که قریب خود را نیز نمی تو که زندانت مرا قریب می یا من که زمزمه تو در این بهارانم مجال باغ و دماغ سبززار نمی از مادو، دو کدام قفس، این زمزمه این قریب این بهاران این قفس این قفس این قفس ای امان سلام من بهار هستم و اینجا رادیو هجده بنفش است جایی که هم رادیوست و هم بنفش است و از قضا هجده هم هست اینجا برای پر کردن نیم ساعت از شماست مثل یک دسته لوندر بنفش و خوشبو و مهربان که حالا اسانسشان درون یک شم است و آن شم درون یک جاشمی قفصگونه است و سایه میله های جاشمی روی سقف میافتند و می رقصند و بویشان را به رخ تک تک سلول های خاکستری مغز می و به همه می گویند که ما روزی لوندر های بنفش و عاشقی بودیم و این عطر ما از عشق است. و این عشق به خاطر آن دختره که ساله ساله‌ای است که وقتی ما را میچید سرگلین میخاند و به خاطر آن موهای زرد و طلایی است که حالا ما این چنین مهربانانه خوشبویی اپیزود نهم و همینجا فصل یکم هجده بنفش رو زودتر از موعد تموم می‌کنیم بعد این اپیزود ویژه برنامه هجده آذر رو داریم و بعدش ویژه برنامه یلدا و بعدش فصل دوم هجده بنفش با رویکرد جدید میاد سراغتون تا اون موقع چی به سر این دخترک غمگین همواره و بیاد من که نمیدونم اما خوب میدونم که این دخترک ادامه خواهد داد تا وقتی که زندگی جریان داره و صداش بالاست و ولومو بده بالا <تصفيق> من نمیدانم چرا خواستم از قفس‌ها بگویم شاید به خاطر آن مغازه لکس پروشی در ابوظبی است شاید بتوان از میان ها هم یک سری چیزهای خوب بکشی بیرون چیزهایی که هنوز آلوده پروشی ما های مخلوقات نشدند مثل همان قفس‌های زیبا و سفید و رنگی پنگی و حتی لوکس که درونشان شم روشن کرده بودند و گل گذاشته بودند و مادرم عاشق شم از تو این قفسها انعکاس نور از میان میله‌هایشان روی دیوار و بسیار زیبا می شود و اصلا چرا اینها را می گویم؟ اصلا چه عادت است که با کمک این واقع عج یک ریز و یک نوس هی میگویم و میگویم و میگویم بوی اطر لاونندر های که در قفص مغز من مانده است می بینید این خاطرات است خاطراتی که مثل گنجش های کوچک و قهوه یک جا نمی ماند باید یک قفصی باشد که آنها را نگه دارد حالا قفص خاطرات مغز آدم است که یک عطر میتواند کلید ورود آن با باشد خاطراتی که قدرت ویرانگریشان یک پسگردنی پدر و مادردار میزند به به بمبهای اتمی نیروگاه های اتمی جهان یاد آن شر از حمید مصدق عزیز افتادم که میگفت وای باران باران شیشه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شد آسمان سربی رنگ من درون قفس سرد و اتاقم دلتنگ میپرد می‌پرد نگاهم تا دور Voj bara, bara. قفص چیست اصلا قفس چیست من به شما میگویم قفس چیزی نیست جز پادشاه ازدادی که اسمایل ابن حماد جوهری یادش رفته این واژه به عنوان پادشاه و یا حتی ملکه تمامی ازداد بیاورد در کتابش اصلا قفس چیست جز افکاری که ما را به قهقرهای آکند از ترخی میکشانند قفص قفس به نظر من چیز بدی است چیزیست که سنگین است و بعد چند وقت بر اساس نظریه داروین بالهایت را کوچک و کپکو خشک و پودر میکنه. آری، قفس قفص چیزی نیست جز ما ماهایی که با حرکات و افکار و حرفهامان دیگران را خشک میکنیم آنها را آزار میدهیم پودر میکنیم چون مثلا چیزی را دوست نداریم دیگری هم نباید آن را انجام دهد اصولا این افکار قفسی توسعا زیل تکبر با اسانس خودبزرگبینی مفرت و خودخواهی مزمن قرار میگیرند شاید بگوید اینکه همش بد شد پس از داد بودنش کجاست اری قفس همانطور که مخرب است و پلید از آن طرف زیباست و, مهوان و خوب مثلا قفسی که درش باز است دیگر قفسی نیست یک خانه است که میتونی توش شب روشنگونی و به آن نگاه کنی قفسی که پر است از های رنگی پنگی دیگر بعد نیست اصلا قفسی که درش باز است و منفش است و شیشه رنگی پنگی دارد که دیگر قفسی نیست وقتی توی یک قفس با مادرت باشی دیگر قفس نیست ماهیت قفس هم عوض می شود در یک چشم به هم زدن اینطور که نگاه کنی عشق هم دیگر قفس نیست بلکه پر پرواز است اینطور دیگر آشق زندانبان بالهای مشهور نیست دیگر قفص میله نیست و شکنجهگاه بلکه محل آرامش است گلند شده اند دوباره قد شکوفه های نارگل های حیات پشتی این بار قیچی باغبانی را زمین بگذار می دانم تو دل خوشی از گسی انارهای رسیده نداری ولی بیا و این بار با من به انتظار ترکیدن انارها زیر آفتاب دم زخر لم بده و من برایت چای بریزم و سیگارت را در ملوکی چرک مورد و تو به من بگویی موهایت بلند شدن دوباره قد شکوفه های های حیات پشتی قفص ها اصولا ما را یاد زندان میاندازند وقتی اسم قفس می آید خیلی ها مثل من یاد این شعر میافتند پرنده های قفسی عادت دارم به بی کسی ولی این بار نمیخوام غمگین مریسم نه این که گمان بره که مجبورم که شاد بنویسم ولی خب مطمئن باشید قبلش هم مجبور نبودم که غمگین بنویسم اصلا چه کسی گفته من غمگین و ترخ سختم من فقط کمی خستهم باید خاطر نشان کنم که این منی که هی میگه همش مطلقا مربوط به خود من نیست این من شاید شما باشید شاید او باشد و یا حتی شاید من باشم داشام میگفتم که اصولا با اجبار نمیشود کاری کرد به قول آقای رضا مارمولک اینقدر گیر نده به این جوونا آخه به که زورکی نمیشه عزیز برادر اونقدر فشار میاری که از اون ور جهنم میزنی بره. اصلا همین اجبار خودش قفص است یک قفص تنگ و تاریک و نمور که گلاب بروی تان دست به آب هم ندارد و فرد مجبور تا آخر عمرش مجبور است کنار آن قزای حاجت کند و غذایی که از زیر در می‌دهند را بخورد و هیچ نگوید و هیچ نخواهد و هیچ تنندیش. اصلاً فقر یکی از بزرگترین نقص‌های عالم است. قفسی که قنا آن را می‌سازد که افرادی را درونش بیاندازند و بعداً در یک قفس دیگری خودش را انباش کنند برای یک سری افراد دیگر. بهتر است اینطور حرفم را اصلاح کنم. فقر و قنا از بزرگترین نقص‌های این عالم. قبلاً هم گفتم که قفس از بزرگترین از اثرات است. تعریف از در ادب این است که یک باجه در عین اینکه یک معنا دارد معنای ضد خودش را نیست دارد اصولا می توانم برایتان کلی مثال بیاورم که متصادیقی از قفس هستند و در عین حال آن معنای دوگونه را نیست می توان از آنها برداشت کرد شاید جلوتر که برویم برایتان بگویم بزرگترین قفس عالم که ما را به سرداب سردرگمی های ازداد می اندازد چیست. Bye-bye, Blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet and so is he, bye-bye, Blackbird. چقدر پیر شده ای میبینم می‌خندی چقدر پیر شده ای شبیه یک دکارت در خود شکسته ویلگرد و چقدر دلم برایت تنگ شده است کاش بودی و تو خودت هم نمیدانی که چقدر دوستت دارم چقدر پیر شده لعنتی لنتی موهایت کجایند انگشت اشاره دست راستت از دود سیگارهای تند و یخ کنتت زرد شدند و هی پک میزنی و هی پک میزنی به اندازه سالها سکوت یخ زده ای چقدر پیر شده ای لنتی و خودت هم نمیدانی که من چقدر دوستت دارم و تو خودت هم نمیدانی هیچ سکوتی در دنیا نیست هیچ آبی نیست هیچ ماهی نیست حتی هیچ گربهای نیست هیچ بیگانه در دهکده مارک نیست؟ نیست، هیچ گل رز سفید پیچیده شده در پلاستیکی نیست هیچ دسته گل نرگس یخ نیست هیچ آدمک زامبی شده شکلاتی نیست هیچ پروپرانولی هم برای درد فشار نیست هیچ گوریل سیاه و بد ریختی نیست هیچ هیچی حتی نیست تو نمیدانی که چقدر پیر شده ای. تو خودت هم نمیدانی که چقدر خسته ای. تو خودت هم نمیدانی که چقدر قرغان دوموروارید سیاه روی دیوار شده ای. تو خودت هم نمیدانی که چقدر پیر کرده ای خودت را لنتی قفص ها هر چیزی می توانند باشند چیزهایی که از دست میدهیم و چیزهایی که به دست آوریم، چیزهایی که میبریم و چیزهایی که میبازیم چیزهایی که خوشحال ما میکنند و چیزهایی که قمگین ما می کنند. چیزهایی که به آنها افتخار می کنیم و چیزهایی که بجوری ما را سرلب کندنده میکن قانون نسبیت عام و خاص سرنیشتنم جلوی این قفص ها و مسالقشان کمی کم آورند ایننگار نمیدانم شما اهل ورق بازی هستید یا نه ما در این بازی ها 52 تا ورق داریم ورقهایی که معانی خودشان را از ورق های تارود گرفتن خش به معنی پول هست گشنیز به معنی اصلح پیت به معنی شمشیر و دل دل به معنی یه است. یک آهنگی دارد این استینگ به نام شپ ما ها یعنی شکل داستان یک قمارباز است. قماربازی که برای پول بازی کند. بلکه برای کشف یک حقیقت بازی کند. او میخواهد از توی کارت ها حقیقت زندگی خودش را پیدا کند. او دنبال یک قانون است، قانونی روحانی، قانونی که بر اساس اصل احتمالات یا حتی شانس باشد. یک بازیکن پوکر خوب نباید احساسات خودش را نشاند، چون طرف مقابلش دستش را از روی حالت صورتش میخواند. برای همین قمارباز ما یک نقاب حمیشگی‌ها روی صورتش می‌اندازد. این برای یک پوکر باز چیز بسیار خوبی است، قفس امنی که به او کمک می‌کند تا برنده میدان باشه. ولی برای یک مرد عاشق چیز بسیار بدی است، زنی که مشوق این مرد است به احتمال زیاد فرد بیچارهای باید باشد. این قمارباز به سرنوشت کارت‌ها نگاه می‌کند. او خود می‌گوید می‌دانم که پیک‌ها شمشیرهای یک سرباز هستند، می‌دانم که گشنیزها سلاح‌های چند کسند، می‌دانم که خیش تا به من یه پول برای این هنر هستند، اما آن شکل دل من نیست. اینطور برای برای بازمان نوعی تزاد میان واقعیت و خیال با وجود میاد. تضادی که یک قفس است و قفسی که پشت نقاب پوکر بازیش مخفی شده. حالا دیدی که قفس و هر چیزی میتوانند باشند. قفس ها چیزی نیستند جز چیزها و کسانی که احساسات خوب و یا بد را برای ما نگه میدارند و ما را میان این حس تضاد خود با فشار بالاتر از کمباین های قدرتمند آمریکایی له می کنند و حتی پوکه هم باقی نمیگذارند. از ما و شدند. He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades به ساکم خیره می شدم یک برچست دارد رویش نوشته بدون مقصد همیشه ها بدون مقصد بودم به آدم های توی خیابان میاندیشم. به خودم به بی کسی هایم شاید آدم ها رو نخواهند و دوست ندارند ولی من به آنها هم می اندیشم. به آنها که به بدبختی ها و بی پولی ها و بی کسی هایشان می اندیشند. اینجا واقعیت است توقع ندارید که به لیلی حوزک و حوز نقاشی و گنجشکک اشیمشی و قاقا لیلی و یه روز خوب میاد بیاندیشم. آن یکی که بزرگتر است و شاید که من باشد بهتر می داند. چون او اندیشید ولی کسی نیامد کوچکتر هم شاید که باز من باشد دارد می اندیشد که یاد بگیرد جبر برای او درام تراژیکی ترتیب داده است قفسها شاید همیشه ها بد نباشد ولی در اصل گاهن نمیشود آن بود منفی گونه درونش را به بیرون پرتاب کرد و در بیشتر مواقع آدمی را به ورطه نابودی می کشند نابودی که با حبس‌های طولانی و شلاق و شکنج شروع می‌شوند و با خاطرات و مغز عزیز هم همکاری پیوسته و کاملا ناگوتاستنی دارند می‌خواهم یک از تجارب و البته دستیافتهای خودم را در مبارزه با این قفس‌های نابودکننده با شما شریک شود. از وقتی که کمی فهمیدم که فراموش کردن بهترین کارتون است قشنگ ترین چیز دنیاست حتی قشنگتر از زیباترین چشمهای دنیا ولی مشکل اینجا بود که مفت مجانی که نمیان این بهترین کار و قشنگ ترین چیز دنیا را بدهند مثلا به ما به جایش یک پیلاخ گنده نشانه دادند و گفتند اهک اه باید دانست که فراموشی رابطه کاملا مستقیمی دارد با بفاک رفتن. به اینشک که اگر نتوانی فراموش کنی امروز بفاک میره فردا بفاک میره پس هم فردا هم مطمئن به که کماکان بفاک میره اصلا میشوه یک رفته در فراموش نکردن ها اصلا یک مکتبی هم داریم با یک مانیفست بسیار بسیار قدرتمند و بسیار بسیار منطقی. نام این مکتب فراموشییسم است. خصوصا فراموشی درمان تمام دردهاست. باور کن فراموشی درمان سرطان است. درمان ام اس است، درمان میگرن است، درمان افسردگی است. میگویند توی خارجستان یک دوایی هست به نام قرص سترین 500. هر 8 ساعت با یک لیوان آب پرتقال یخمال بالا. و بعد یک دوره سیتای می میشه یک موجود خوشبخت جدید. بعضی ها هستن که خدادادی آنزیم فراموشی بدنشان بدنشون می میکنه. همچین خیلی خجوج و مرزانه. میگویند این موجودات ارزشمندند. مکانیزم اثر آنزیم فراموشی در بدن این گونه است که این آنزیم در ابتدا سنسور بیخیالی را در بدن کاملا فعال میکند. سپس با این سنسور کاملا رفیق ندار میشوند و میروند یکی یک بیلاخ گنده نشانه تمام بدن میدهند و همه را می که فقط خوش اصلا یک سری کلاس ضمن درمان دایرویت به یک جاهایی را نیز برای مغز و قلب می‌گذرد. وای به حال کسی که نه بدنش آنزیم فراموشی ساز ترشح کند، و نه پول خرید دوایش را داشته باشد. آن وقت است که هی به فاک می‌رود و می‌ماند در قفص همان زیباترین چشمانتون. آری، فراموش کردن یکی از بزرگترین راهکارهای از بین بردن قفسهایی است که بود جسمانی ندارند، بلکه به صورت خیلی منتالیسم و ذهنی در قفس خاطرات مغز ما محبوس شده. یادتان هست آن اول ترها گفتم که قفسه آدم را یاد زندان میاندازند یاد آن شعر پرنده های قفسی عادت دارم به بی کسی. و یادتان هست که گفتم اصولاً قفس می تواند بالها را خوش کنند و پود کنند از کار بیاندازد یادتان هست که قول دادم برایتان بگویم بزرگترین قفس عالم که ما را به سرداب سردرگمی‌های می میاندازد چیست در چندین دقیقه قبل هی برایتان از متزات های گفتم که درون مغز ما می‌روند هی ما را شاد می‌کنند و هی ما را غمگین متزاتهایی که در اصل قفس‌های فکر و روح ما هستند قفس‌هایی که میزان منفی بودنشان میچربند و میزان مثبت بودنشان قفس‌ها چیزها و کسانی هستند که ما را در خود زندانی می‌کنند چه خوب و چه بد در اصل نفس زندانی شدن بد است حالا جنس زندانت از خوبی باشد یا از بدی نیبینید قفس خودش بزرگترین قفس دنیا است خود ما بزرگترین قفس‌های دنیای خودمان هستیم خود ما سازنده این ازداد قفس گونه‌ای از هانمان گونه ماهایی که خودمان را پشت نقابهایی که شبیه خودمان نیستیم قایم می‌کنیم برای اینکه خودمان را طور دیگری، به دیگری آره، آری، قفص ها چیزی نیستند جز این نقابهایی که خودمان را درون خودشان مخفی کردند. ها چیزی نیستند جز دروغ و هیلو و پنهان کاری. برای شکستن قفص هایی که شدند، صاحبان ما بهتر از هر زودتر دست به کار شویم تا دیگران پرنده قفسی و غمگین و وقت برگشته نمانند. انتخاب با خودمان. اینجا رادیو هجده بنافش بود جایی که هم هجده بود و از قرار بنافشم بود میدانید چرا از زنگ تفریح بیزار بودم چون بیشتر از هر زمانی تنهاییم را به راخت میکشید اینجا را دیو هجده بنفش بود و شما قفصل هایی را شنیدید که هر روز بیشتر تنهای ما قفسهایی هایی که بعضا شاید هم بد نباشند قفس ماهیتش همین است که ما را در مشتش بگیرد و دیگر ماهی نباشد. و این بود فصل یکم رادیو هجده بنفش. فصل یکم فقط نه قسمت داشت ولی فصل دوم ما احتمالا هجده قسمتی پخش کنه و احتمالا هفته ای یک بار باشه به جای دو هفته ی. منتظر ویژه برنامه هجد آذر و ویژه برنامه یلدا باشید رادیو هجد و زنده است و زنده خواهد بود تا وقتی من زندهام تا وقتی دنیا داره میچرخه تم <تصفيق>